اللّهٔ از شد ما و آموزش ما و آموزش ما و و آموزش شده بودن و به پیشان همین محلشه مورد بحث و توجه برای به خاطر مناقشاتی پیش آمد خب مطالب زیادی در اصنا محلش شد اصل از این بود که آیا در ناراضی که احسان قدر به میکنه آیا یا نامقرده میتونن به قطعه همه نکنی؟ پس از کردیم مثل محضوم صاحب و که قبلش شیخ میگفتن برده میتونه ایشاره من شعر زمان را ساورده قبل صاحب شده و صورم شده که ممکن اما که محضبه حالا در ها داریم مثل فهانی مرد میشه که من نمی بکنه معدیه و معدیه به سلاس تراموز و میشه چون طریقیت قدراتی است اگر انسان دان میدونی این حرامه شابه بگید و در که از اینکه این مقدر برد بحث های قرار گرفت از نظرات رو به خاطر اینکه جمعیت در شد امروز مسئله در آقای از اصحانی قدسال و هر اصلا که عبارت کلمتن کفایی کتاب مرموم اصحانی خاشی است بر کفایی رو مثل کتایی به این صورت لا شب حتفی وجوب رحمل علاقه لطف عقله همه از که در کتاب رسائل شیف لا اشکال بوجوب مطابعت قبل عنوان بوجوب مطابعت گره و لحن علاقه فهم آزان موکیدن و این چندوزی که کلمات مرغوم محقق ارادی و متعرض شدید ایشون به عمل همون وجود مطابقت به که شکل در ولی کنامش در کفایی دوم رو برده لاشکو برکتی وجود عمل علاقه به فرط حقل این چون سابرهایی رو توبیید بدن پس ظاهرا خود و مرمون به کفایی به عمل گرفتن وجود عمل پس معلوم شد که راجب خلاهان مرموم شیخ ادهه قسمت اول رو گرفتن مثل محکره اراقی ادهه قسمت دوم رو گرفتم مرموم اسفحانی فردسال باقام نسل می‌فرومیم لایال هبو علیک مرمومی لایال هبو هم می‌شه کنم بسیقه نه لیکن خب نه‌کش کنم اندر مراد به حجوب ایشون خوب همیندن مراد این نیست که انسان واجب است به حکم عقلی حکم نداد لیت به اضعان العقل استقاب العقام ما به قرد عمل لیهیم ایشون اینجور چه عقل میکنه اضعان میکنه که اگر شما قرد سیده کردید و رو بردارید یعنی به احبارت دیگر موضوع حکم جزائی پیدا میشه ما میشهد در بحثات اون حدیل راه میشه که اسم این رو تنجز داشتیم تنجز یعنی پیدا شدن و حتی به موضوع حکم جزائی شما توضیحاتش رو از سر دیم احکام تکریفی احتواراتی هستن به قانون و مقدمه قرار میده که به نحری و هر کار باید مشتمل بر نوعی از تکار جزائی رو شد. اون وقت مخالفت این تکلیف به نفسه به نحضر ایسیان تکلیف این حکم جزائی نداره اونی که حکم جزائی داره عنوان ایسیان خانون تمرد بر کانون کسی که ایسیان رو کنه خانون این حکم جزائی داره بس تن از اینه که این حکم جزائی که بار میشه ایشون مخابی بکنم که عقل رویت میکنه وقتی شما قرص شیدار کردی موضوع حکم جزائی میشه چرا؟ چون اگر ما خالصت قرصت این اتیانه روشنگی بود مرادیسان به استثباغ به عقاب علاقه و خالصت ما سهل نبه به قرص چون ما عقل کردیم به مجرد این که انسان تخصیب و انجام ندار حقوبت نداره حکم جزائی آه اگر حقوبت یا ایشون حقاب ما بجاری بودیشون حکم جزائی به مجرد این که ترک واجب رو حکم جزائی نداره چون حکم جزائی همه از انهای مختلف زندان هر چلاف هر کول هست می‌دارم تبریل هست, هست،, هست. انهای مختلف یاد ایراد داره که یقویی با هم داره خود این قضا قامانه نوع حقوبت. چه قرار شده او از, عبوره. عبوره از او عقوبه این حکمه پس مراد از او حجور اول وقت یعنی عقل روکش میکنه تو که الان تکلیف تیزه دیگه منتظر چیزی نباش اگر مخالفت کردی افتان زدائی بار شد لا انموناش بخصن و تحریکن من اله اول از عقل و غلال تحلیقی نیست نحن ما تحلقه به که ما ساگه چی قرد به چیزیدی داشت تحلیقی هم باشید و این کار ما با گزه ظاهر تحلیقه قصد نالالامه از آمان لابای آمان میشه این تحلیقات و زمان خود ساکرهایه نوشته بیشان و مرادیشان تحلیقه استاد، هاشید که صاحب بر رسائل دارن چاپ شده چرا شده هاشید داره بر رسائل شیف هنسال خود صاحب چیزی بودی؟ شیش ماه مثلا هوائل بودش به مردن به درست مطمون شیف در شاید با تابله شیخ نیست امده یه شاگره های شیخه مثل مرموم حقی رشتی و دیگر و امکان و ظاهر تحریفت و اصطاد نالالله هم از اجایر ازایر اتفاقیه یک آیه هاشیخ مجرور به حمولیه یاده بلکی حفظه اترامش بکنه این تحریفه اتفاقیه ای بر رسائل رو برداشته، به اینه ها هیچ این تحریف و اسم خودش چاپ کرده اتفاقی دارم چاپ رو اسم خودش رو توش از نتایج افکار آزیه مثلا وقتن خلاه آوازم خواهیه هرچی به خاشیه یه سایی این برسه و کتاب مشهور بود یه چی خیلی بسیاری یه سه فواله نشده دو را را این را را را سوی و اما کامل هم تنگیبی داده نشین فقط چاپ سرگی تا اول چاپ سرگی بود که تا منم دارم این چاپ سرگی ده. و امکان و حضار تحلیفت و حضار از آمان با حیامه علاق رساله مراد شمدیم ضرورت ام نهودا و زمن خوبت الاخره و شعنها هدراک و اشیا از این بایم شو آمان در شداد و برد یه اشاری خواهی کرد که ایشان در حقوق آقله میگه بحثی نیست این بحثیست که ایشالا بعد اشارت اونهای حالا که آیا عقل عملی چیز مستقل نیست خیلی از عقل نظری یا مرجعش و عقل نظریه این هایی که میگن مرجعش و عقل نظری بحثی نمیدونن فقط ادراک هزاره اشیاء و مراده از عقل عملی این که انسان ادراک بکنه اون کمال مجردی که در وجود هست اون رو ادراک بکنه و خودش رو سبب و بسازه اما دیگه بحث و دجوری ها مثل ینبقیه همه یفعی همه ینبقیه همه یفعی همه یا همه یفعی همه یفعی همه یفعی همه کما انمون لا بحث ولا تحریق تحریک منر و ققلا بحث و تحریق اعتباری از ققلا وجود نداره این اول مناقشه مرموم محقق اسلامی با استادشون بس حالا همینجا من این نطور ما این توضیح رو از در کلمات محقوق محقوق اراغی که حالا آخر در هم عرض می کنیم این مطلب که بگیم لا شبه هستی و عمل علاق شده هست اصلا اندر بحث یا حقوقی یا در این بود استقاقه طرف عمل همه علاقه خیلقه درست یا نه ما در اونجا دیدیم که مرحله یک مرحله گولای یکی مرحله یک اخیره قرار دارد ما به جایی تربیر مرحله آزیا حفظ و حفظ اخصا قرار داریم هر بحث و قانون بحث خانونی کار به این بحث مقابی پیدا مقابی در مرحث قانونی اعتبارات قانونی یک قرض ازنا دارن که تحریک مکلفه را با قول محروف به قول آزه حرف اراده مکلفه یک قرض ازنا داره یک قرض احسار داره که عمله پس میگه آبیار یک قرض ازنا در اون ایجاد داعی بکنه ولی این برای آبیار اگه من نمیگوستم میخواست خود آب نمیگوست من ایجاد داعی کردم به گفتن آبیار این یک قرض یک قرده که آب بیا تو خارمون بکنن از دو تا قرد همیشه هست ما این بحث قانونی رو به این سیغه بطرق کردیم اون سیغه ایمون که اصولاً تو مبادر سکر رو قرده ازناب هست و من در قانونی و حبودی بهتر و قرده احساب هست بکنیم نه این راهی آره رو که مرمون آقا شمسین قدرت الله وقتن برای آسوانی خود دسته رو شبیه بود نه اصلا بگیم تره بس عمل این شیف همی نیست چون ما الان بحث اون در پنج جد تره همون ایجاد داریه یا سرف اراده روال قرآن محق به ارانی این در کتاب کفایی آمده لا شوق حتفی حجوب لعمل به تقریب ایشون عمل حجوب لعمل علاقه سرگه همه در محقه سایل شیفی که این تعبیر نیامده در وسایل شیخ می توانده فی وجود مطابعه سلقن تعبیر مطابعه کرده و به همه در و از شد که مرموم محدود اراغی بیشترین تحکیدش روی وجود مطابعه بود و قدهی مثل سابق کفایی بیشترین تحکیدش روی وجوب عمل بود حضر در عبارت شیخ بود غایت ما بود مرموم محقق اراضی کلمه مطابعت را اهم از سرک اراده را و عمل در خارج گره. یا به تعبیر بنده اهم از قراز ادنا و اخصا گره ما محتبه که در برس اصولی اونی که الان محل کلامه در مرفض پنجیز اون قراز ادنا نه در از اون اون برمیده نقام امکسا ما برسته اون اینه اون مقداری که موجب بشه مکلف تحریش بشه برای انجام کار آیا پس تنهایی کافیت یا این سوال اینه مرغوم محضر اسفانی اشکال رو سیره دوگر کردن که ما به نظر ما یعنی در به نظر ما راه درسته اینه حالا این مطلب ساکفایی باشه چون در محضر استاد وقتی در مخبار همین مدنا رو توضیح دادن و قبول کردن باشه اونجا من توضیح ارزمیکنه. یه مقدار این مفهوم مردم اسلامی از در مطلب خارج می‌کنه. دیگه حالا ساری نیست ما برای احاطه بر کلام ایشان البته دلیل مباحث ایشون چند جا در حاشیه مبارک مطلب دارن که خب انسان خوب همه رو با هم بخونه. ما همین که رو بکنه بقیه سیاهی خودشون مراجعه ایجاد بعد بعضی در احکام ال اوغلاسیه از اینجاشون که با مشهور شروع می‌کنند ایشان خلافند مشهور از, از بر خب این مشهور اندی که بسیاری که قادره به حکم عقل عملی هستن. شما میدونید که مثلا در میان مصالح ها اکثریتشون که ثانی باشن و شاعر باشن منکر عقل عملی هستند مثلا اونا خسنگوه رو قبول دردن او که هیچ فقط این روشن بشه که وقتی این مشهور یعنی اون آقای چه که قبول کردن اون آقای که قبول کردن ازده ازیادشون گفتن که ما حکمی ادراک ارجاع دادن عقل همنی رو به عقل نظری که توزیش از این همه این گفتن نه درست ادراک عقل همن نظری هست این نظام از هم، نظام عطم مرشمل اجمل در طبیعت وجود داره در آلم وجود و که غیر از اگرات از ما برای این نظام هم یک انگیزه داخلی همه هست که ما رو به طرف او فرام می خواهن. این عقل عملی غیر از عقل نظری یک چیز دیگری تأثیر در اون داره نه اینکه نیست خبیه اصلا عقل نظری زیر بناس داره عقل عملی اما تنها اون نیست که این یک چیز دیگری هم نیوی دیگری هم خدا من در وجود انسان مثلا در وجود حیوان نیست در وجود ملائکه نیست در واجب وجود نیست چنده میگه مثلا خوب که چیز در حق سالا به مستدر عمل عملی. عقل عملی در اون حق سالا عقل عملی متصور نیست اونجا هجه از ارون بس در وجود انسان و حسرتی که انسان و حسیثه که انسان داره به قید از ادراس حقاق و عشق علا مالی ها یک نیروی دیگه هم کدا در وجود رو قرار داده که او رو به سرک اون کمال حرام می کنه حالا تصویر و صوبی و رفع ارهام از اون مطلب مطلب دیگه دیگه این مشروع کسانه که قابلن به حسن و قلبه حقیق مع محق اراه فال روصسا بر اوقلالی اقللی نیست این روز اهفام اقلل نمیکنه. این روز اهام احکام بود نیست که برای که نظام. اینتر در اهام و اوقلالیه اما از تعینر خ بودن کمانسی جیان شالله آ ارت انل غضا یا مشهوره ما را در غذا یا مشهوره؟ به اصطلاح خدایان در صنعت در صناحات خبز علیتی تطاورت علیها آرا و اغلاع حالا ممکنه این مدارشان دقیقاً حقیقی نباشه حقزن به نظام به به و احقاهم به نب ترکسن به عبر و قبط ظلم و بود خجوان مطلب این محل رویشون چند سفیه بعد گفته من حالا این یکی کش رو میخونم در یک میگو حالا در مرد یک این دخالت شدیم، شما به یک در به ویژه من احدهای من اولی الباب، آن ها حکم جدید من آخر چی میگه؟ یک حض اصه. یعنی اینکه شما ملتزم بشید یا مقید بشید به این تطویر قوانین و به جا آوردن قوانین برای حفظ قانون تطویر داشتید باشید که قانون انجام بوده این کار خوبه این رو بسید اصلا هم احلت این یکی حفظ یعنی مطابعت قانون فیدگیری قانون انجام دادن قانون تقییب قانون اتضام قانون شمایی این بسیار نمو خوبی است. دو من خصف فیدا قانون اینه شب بگم حکم جدید اینه دیمان وقتی خصف که کردم حکم قانون رو با دنگه دیگه چون اون که اولی یا اغلادی بود که حسن طاحت و تغییر آهایان یا انتظام عملی به قانون بنابوزشن بر قانون و فاضار بودن به اجواله اینکه این که افنه عقلیت یا همه قرص را که قامون این از من میخواد که من مثلا این مالیات در مالی خب در اینجا دوی اینطفاق قرص بیگه خب من اگه قرص را کردم از این پریهیت ذاتیشه ذاتشه پس من باز این دیگه نقطه ليس یک کبر های اقلیز به حال خواه و خودصی را بینم کردینکن. به این مثر تغییره رو در قابل یعنی اعمل گفتی میکنه، که اگر انسان مخالف لغان کرد این عقل یا اوغلاس اینه در اگر انسان مخالف لغان کرد استحقاق احکام جزایی داره بجوی احکام جزاییشون همش کلمه اقعاب و حقوقت رو بکار میبره شما برایی که یک روشن تر باشه ترمیه رو در احکام جزایی بکنه لعمر المولا و نفیهی علال مورد استحقاق تطویق طبرا علال مورد به مجرد تعلقه به عمل رو بفتی میکنه به حضرت تا هم عمل رو بفتی میکنه که اگر صبح عرض کردن آن صبحی هم عرض آثار جزایی و احکام جزایی بر خود مخالفت قانون نیست برای عنوان اتسیان تمرد حضرت قانون ولی زا اگر اینسان خبر نداشتی خبر روزن و خالا به قانون کرد احکام جزایی باید نمیشه این قبعه ها با بلا باید قبعه ها بلا و کونی هیی بلی, بلی, بلی این کبرا به مجروره تعلق قطعه به این کبرا منتبر موشه و حیث این کبرا لعقییت مسلمتون که استقال تحکام جزایی روشه و انتباه باقا علا موضوعها قهریون فلا فلذا لا مجال البحث لذا اینجا صحبت امر یا خنج جزای رو نکند. نکنید الا ان تریقیت قرد ببینید این تریقیت قرد جعلی یا جهلی نیست و کون القرد این کمونی بیان برای تریقییته موجبند انتباه کبرا علا سقرا ولعجریی به خاطر این بحث علل رو قدسوس روح رساله به طریقیت هزادیه ظاهران علل رو زنی انصاری برمیگرده بودم بودم بودم طریقتی رساله ظاهران مرادیشان شیخ هست این همون تصدیری بود که ما از مربون جانهی هم نهبی کردیم چون عرض کردیم که عبارت شیخ این طوره. لا اشکال فیلوزون لزوم قبل و لعمل علاوه خیلی مازام موجودن لن نروب نفسی تریحانه در باقی این کلمه نفسی رو بردها کردن ذاتی یا ذات شهر از این کلمه ذاتی و ذاتی رو به کار نبوده آیا برها به جای کلمه به نفسی گفتن ذاتی مرموم نایم این عبارت گذرش طبعا شبیه هم از مرموم عاضی گذشت گذرش از عاضی در عبارت کردن و خلاصش این بود که این یک حکم عقلی است یعنی این خود جای بحثی نداره وقتی شما قصد فیدا کردی حکمی دیدن این وجدانی یکی ماست با حق شما چون قرط طریق تلیف ذاتی ذاتی و ذات شدن که پس شما اون تون رو میدینید چون طریق دیگه مثلا که ها فرموز این خرگوش بوشت خربوش حرام پس شده که این حرام شما به حرمت بوشت چون در اموری که طریقی هستن تمام نظر به اصطلاح آیان به اون مطروخه به خود طریق نظر نمی‌شه. نگاه نمیتون به قرد به صفت نگاه نمیتون به حرمت بوشت خرگوش. مطروخ مراد ماهی آنی از هزر بیان درسته را خصوصی اینجا چون درها از تایم شد دروجیت چون صحبت از مسئله‌ای خایمه که من لغزداری در مقصود داره در تاریخه اونوز در تاریخیه این کلمه مخدود رو بیشترون نگرد به کار می برن. علای کیه ما خان ان شاء الله مطلب روشن شد میگه چون هر طریق از زات شما دارین می‌بینید با قدرتشون اصلا, اصلاً خود دسته قاعده مسئولون ها که اجرا بشه ولی شما حرمت گوش خرگوش رو میبینید و وقتی دیدین باید عمل بکنید یعنی چی میبینید یعنی حالا که دیدی پس بنابراین شما اون کبرا بار مشین کبرایی که کسی که مخالفه ده تکلیف پیدا کنه استحقاق به قانون جزایی داره یا به عبارت دیگه موضوع احکام جزایی محقق میشه آنه این موضوع احکامی که این کار سیده بخواهی بگیم موضوعات احکامی شد در عربی اگر موضوعات جمع باشه موضوعات با هم چند میکنم موضوعات احکام جزائیه موضوعات بگه بهترشون انوار مختلف درد موضوعات احکام جزایی هم با فکره به شما پیدا باشه پس مرادر خوبیم احقیل در اینجا اینه این خلاصه بخشیشان و نامازان نخوری هیچه این طبقه پس منابراین ما بجاری بحث از عمل لزوم متابعت لزوم عمل بحث از این طریقیت بکنه من در کلاب بحث های گذاشته این توضیح رو از سردم طریقیت یکی از دیدیات قطعه در دیدیتیات با این بررسی نکرده یعنی انسان وقت قطعه یک چیزی بگاه بکنه یکی جای از دیدیتیات برای انسان بگه یک سفت خاص نفسانیست یکی این که یک نوع آرامش و سخون میاده یکی این که و و خاشبیت یکی این که واقع رو میبینیم انتشاب واقعا توش هست این انتشاب انتشاب واقعی و حقیقی ابداعی نیست یکی این که با سرگوه اعمال این حالاتیست که برقرد مطرسته میشه، لذا این برس اون مطرح کرده، چون آقای مطرح نگردن وقتی بر حجیت قرض میشه ما رو خودمون یک حالات حالت نظر داریم اگر ما اون معیار حالت خودمون رو بیان بکنیم میتونیم در بحث دقیق در حوزه شرعیان هم همون رو توسعه بدیم مثلا بگیم با خاطر طبیعیت به خاطر کاژوالیت این حجیت قرض بخاطر این آثاروار شدن موضوع حکم جزایی شده این به خاطر طریقیت و کاشفیت بزره. خب توی زم نحتبر هم طریقیت هست کاشفیت هست ناقص اشاره تک میدشیم کنه از هم از این راه وارد شده سر رو و رضو محمد رو اون طریقیت اضافی میبینه مروم آشاناته هم از همین راه شده هم مروم ایشون رو روزش در برس چون کاشفیت ذات برس یا ذاتی به تغییر دیگه یعنی پس بنابراین خواهی نخالی این محلت برش مترتب میشه اون محلتی که برش مترتب میشه اینه که حجیتش میشه ذاتی او و حیث نرخطه و احلاحازا نبول حیث نرخطه حقیقت و حقیقت و نوریت و بله حقیقته حقیقته طریقی تبنیر آتیه دست لازم منظومی دست ذاتی و غیر ذاتی نی لا انهو شیعون دازم هل اقلی از طریقی ولی این ان کل به داخت انه کل وقت اشتغاقی ینتظه از مردویت ذات او فمبدعهو ینتظه انهو مثلا بیان عبیت عبیت رو که شما انتظار میکنید از یک سفتی در مهن مثلا وحث اشتغاقی که از مرتبه ازادشه در میاد مثلا این نور مثلا عبیت برد عبیت فم او مبدع این وحث اشتغاقی که خود برد کشه یا فتا این و بعدا اگر مرتبه ازادشه و الا لدمه الاخرم نمیشه که هم مبدلش خوشه و هم برسته از مقامزات باشه مرزاده که انتظار نشه. بل زاده هون نقص و, و اصلا زاده در و انتظار کاشفه ان و انتظار میگیم نگیم عنوان کاشف به اعتبار وجدان این نقصه چون خود بیاد از هر چیزی عبیت رو دیگه خواهی نخواهی سه برانوان بر بیاد قبیتر از چیز دیگری لا منذاتی یا دی. اما برای ولا معناه تریبیه یک سطح نگاه داشت الا حصول از شیل این حضور این نفس یعنی تریبیه این حضورشه این وجودش در نفسه چیزی جدایی از اونی مثل این نیست که پیدا بشه بند یا کاش با وجود اون کشم هست این کشم من مثال شو از کردم چند بار این موجیون است و با آب دریا شما است که ما دو موج موجی که حرکت داره موجی که ساکنه آب تا سا ساکنه شد بگیم موجی نیست حسن موج یعنی این حرکت آب این نیست که موجی موجی متحرکت موج خود حرکت آب گفت در اگر می دارم نیستم شده هست موج طبیعتش اینه من رو بگم آیا اسمانی هم اینز قبیل ماشین میستی میگه این ماشین متحدد که آن متحددی ماشین میگه گفت متحدد که آن متحدد نیست موج رو نمیشه گفت متحدد که آن نیست اگر حرکتی نباشد اتا موج میگه اینجا نه همین طورست بلد پس طریقییت و اینعزاته لا مزادیتی اینجاش تا اینجاش درسته تل اضاف لا حالت منتظرته تل بین تباه کبرای علی یا آلرموت یه حالت انتظاری نیست برای این تا من پرسید که چرا من انتظار پریست حالا شاید از اینکه مشاید نظریشان که داره حالت انتظاریه شبیه یه چلو مهربن ایرانی باشه چون مهربن ایرانی می‌مونه وقتی می‌آید به اینکه تو سرکه ایرانی بگویی برای موافقت مولا و سعایت مولا در صورت غرف این حکم عقل تنجیدی نه فریقی که من صورتی دادم چند از برسیت شاید مراد مرمون اسفانی هم باشه ایشان یک تذیر داره اون آقا تذیر دیگه لا حالت منتظره اگر مراد ایشان این باشه آه. یعنی حکم تنجیبی از واسه فاهم نیاز بیارن چه این تفریق برمطلب نیست مگر این مرادیشان چیز دیگه باشه بگه اینه این بشه مثلا دیگه تمام کار تمام برمان ظاهرن مرادیشان بگیر از مراد ما همزه ایلو اگه مراد اون با فانیم چون خفیه مثلا فلا بعد این فلا حالت منتظره ممکن است ببین سببیت تام رو چون دو احصو در وقت کلمات محرمانزیشون طولانی سببستوی تکرارون یکی سببیت تام مقدعه چون کشف شام شام یکی حکم عقل تنجیزی یا سببیتی فکر نوزه هم مرادیشان حالت منتظر اون سببیت تام باشه چون بس حکم سببیت تنجیزی روش اینجا ندارن این مجموع آزی یادشن لا حالت منتظر به ازعان به ایتباق الكبرا على عقلیه على المورد فیعت هر درد سببی گفتن ما هو از سبب و تام مرادیشان سرگزه کامن فیعت هر درد سببی ما هو از تام کلام برای و هیچ و انتریقیت و ذاتیه من در شمی کلمات مرمازیان این نصر انتنه این بزرگان ما اینجا نه زادی باز میان زادیه باز میان زادیه ایش میان زارن و و اون زادیه خوبی چند سر قبل نفی کن فجعل شارع غیر و و چون اینجا جاهل رو جهل طریقیت و اگه باید جهل روشه جاهل رو هم سبحانه تعالی ایشون از دو زاوی جهر بحث کرده یکی حق به عنوان موضع ممکنان به عنوان خالف و هم به عنوان شارع شارع و افکار مغنی بسید میکنم؟ مثلا حدثشو می کنیم برد چیزی دیگه بحث اولای بحث در اینجا راه و شریعت مقدس را بحث اقلائی کلیس هم بحث نیست چون خداورد موقعه ممکنهات وقیه که ممکن می زنید و اما به نسبت به علاقه به تربیر شریعه هم بخیر نصابه بکنید قرصه هم ما توی این موارد از روی اینکه خداوند خدا نزاره سآل موقعه ممکنهات را بحث بخش رو جید به هر حال هم, هم ما عدم و قابلیتی جهن به ماهو جائل و ممکن به آن رو نه خلقه جهنی که ف من معبولول من از یعنی تا بخون این رد بکنیم. از جل یا جلت وقتی یا ج مرکب کرده جلب وقتی تسی که هر که رو و ما خلق ما جلشنششه و اوجه داریم. مثلا ایجاد مشمش شده خب آ ان مشمش ایجاز رو هم که رو باشه باشد. مرکب هم مثل که آب گرم رو سرد کرد، سرد رو گرم کرد آتش رو سرد کرد. اونو نه آتش که طبیعتش ت.. گرمی و سردش. و الغرض به موقع و قطع اون مرحله ذاته این مرحله رو محباظ ایشون در مرحله ماهیت. مورد از مرحله ذات مرحله هویت ذاتیش مرحله تقرر ماهوی و بالندور. اینو قابل سنت جمع به نحوی بحث معروفی فرع بحث اسات وجود. که آیا جنب به وجود تعلق میگه داره ماهیت ایشون به نظره که هیچ نفسون بحث ماهیت که باقی جنب نیست الان آقا آقا از تحریم منتعلق جنب به وجود فرماهیت رو بیستد مجبوله ولی آلا مجبوله به جعل بکید شون جعل رو تعلقون که ما اندر جنب ترکیبی بینشه اینکه جنب بکید در محضات معبولی جنب ترکیبی هم بینشه و هسته غیر و لانه رجون شه ذاتی و ذاتی یاری نمیشه خداوند متعال این با جعل هر را برای زوجیت, برا ها جهل را زوجیت هم و برای هر واره بکند زوجیت از است انقصاب امکان نداره سر از ماهنل قد تاییدت و الانقصاب و نوری هر دو ترز نو انه امر لازم و نوری جز لوازم نظام باشه بازم جعل وسیط او طلب نمیشه که از لوازم غیر مفارقه و و لوازم غیر مفارقه و مفارقه اما در مرحله وجود چرا این مرحله ماویه در مرحله وجود شامل پیش شوک خدای عنایت مرا باعث نشه شوک مثلا اما وقتی خاطر شد اون انکشاف هم باشه اون نورانیت هم باشه نه که اول برای خود قرار بره به خاطر نورانیت مثل مشی مثل زاردو مخصوصاً در مساحت زرد و شرکر، زردیم با شرکنی که اول زرد و شرکر در زردیوش اینگونه، باشند. و هم ما فی مرحله موجوده، تلگر و بسیتلا، معمولاً که اینجا شک نداشته و شک داشته باشند، خدا نیست بوده. و بودن افرادی که راجع به علم، مثلاً جبردار، در شک داشته، بودن، خودشون دارن مقابل حضرتشان حضرت انایتی کردن سفرده قرد به این برشون کنید میشه این ممکنه فر جعل بسیط و لک اقوارتون انه و تفکیل میدید و ایجادی مورد جعلید خط ایجاد و همراه معقول این قبول جعل بسیط بشون این وجود شعل میگیره و که در دخل دخول مورد دست محل بسیط است. نیست از ایجاد و قرد ایجاد و تریخ و که دو تریخت و هوا به علم اینی مستند الاجهاب و ممکن است، و جهل جعل قد لا جعل و ماده ایسه به طریق انبزات طریق و محل و بلند اما جهلش به معنای تعلق جهل به وجود رابطی وجود رابطی در است که وجودی در به خیلی ترفیه نروشه چیزی نیست در اونجا مثل معنی حرفی علاقه همه که ما ها رو بعد ما رفت ان عقیق از قرد حقیقت تریخیه و مراتیه فوجود وجود تریخیه وجود نفسی لحل رابطی فتده در درجه یه نمتیه نمو حقیقا به همه این موازد رفتی اصول نداره حالا یکون فرمولن ما برای اقتعاق می کنم کنم بیم مکاله نه این که باطله همه این رفتی اصول نداره و اما عدم قابلیت جعل منحطات به ما هواشاری نیست و خداوند به عنوان مشارع میتونه جعل ترییت بکنه، فالجعل محصول منهو من هیچ هو هواشاری آن هوا، حساب رقصان هوا نمیشی با خداوند در سکه ترس، برای سکه ترس دشوارتری بودن و رانی زنده بودن. این یه بناس خدا تصرفی بکنه شاره تصرفی بکنه باید بکنی این قصد اصلا انجام نده در حکمش مثلا قرض داری گوشت خرگوش حرامه میشه که برکت نعمل نکن یعنی چی می که بخور در حکم معروبه اما قیلیزیم معروب نیست یه وقت گذشت بلیه کم